حکایت یکی از پسران هارون رشید پیش پدر آمد خشمالود که فلان سرحنگ زاده مرا دشنام مادر داد هارون ارکان دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد یکی اشاره به کشتن کرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری به مصادره و نف هارون گفت ای پسر کرمان است که اف کنی وگر نتوانی تو نیزش دشنام ما درده، نه چندان که انتقام از حد درگذرد آنگاه ظلم از طرف ما باشد و دعوی از قبل خصم، نه دستان به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جو گرد. بلی مردان کس است از روگ تحقیل، که چون خش مارگداش باطل نگوید.